حکایت یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی شون دو بادا مغز در پوستی صحبت داشتی. ناگاه اتفاق مقیب افتاد. پس از مدتی که باز آمد، حتاب آغاز کرد که در این مدت قاصدی نفرستادی. گفتم دریق آمدم که دیدی قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم یار دیرین مرا گو به زبان توبه مده که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن رشکم آگد که کسی سیر نگه در تو کند باز گویم نه که کس سیر نخواهد بودن